بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصل الله علیه و سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهیرین معصومین آنها سودای ما صادق آدای مجمعی اللهم فهمان جمیع مشابهی ورحمت بررحمتیکی آرحمان رحمتی از شد بسیار که معلوم شد شیخ ما در بحث مرحله وز در باب رشد حکم وزعی شد که اگر کسی یعنی به قاضی پولی داد فرض بالای شدید یعنی حکم به هم اون کرد علاقلاق معنظر الله علاقلاق نظر از کار حرامی کرده پول داده به این قاضی و کار حرامی کرده به خلاق معنظر الله حکم داده آیا که این پول هست قاضی یا نه بذات الان آن ابو الشيخ حتى الان که متعارف شده در دنیا قاضی هایی که خوش میکنند. پول بیار بده مقصد اقتصادی اخواب میکنن و پول ازش میگیرن حالا به اینکه ما میگیم یا خودمون میخورن که ده تر سر خودش حرف و ندارن اما به هر حال پولا رو میگیرن علاوه بر حال این بحثی که مرحوم شیخ قدس الله در اینجا جمعه فرمودن که آیا غشبه اضافه بر حرام بودن حاصل هم هست یا نه مرحومش از بند یک معاصلی که نشانتی میکید عبارت که هم نهاری کرده موقت چون تصویف مجانی کرده یعنی این طرف امزن این پوی خودشون بباید دادم اینا ها مکانت در مقابل بدون ایچه و هم بارزایت خاطره و یکیزی شبیه اصطلاب مرحومه یعنی کشون تا هدیه میشه نهایت هدیه فاسد میشه همچنین که در هدیه زمانت نیست در اینجا هم نیست من خودم دادم پول مثل انسانی که پول تو جیب من خودم پول رو به این قاضی دادم بنابراین ضمانت نمی داره این از معاصل ایشان نرسند خودش شیخ تفصیل قابل شدن بین اینکه به صورت رشوه باشه یا هدیه باشه در رشتش خواهیم سودن که زمانت میاده درجه که حدیه باشه فرق بین و حدیه هم چیز اینجوری گذاشتن اگر پول داد به این عنوان که به نفع او حکر بکنه این رشت اگر پول داد حدیه لكن به و انگیزه این که مثلا جلد محبت شو بکنه پولی به این بده به رقی صورت احبارت یده رقی یدی باشیم خود رحمت شون گفت ازاد دو خرص ماده و خرص چاکره حالا یک پولی داد چیز رو و محبتش رو بکنه به قول معروب و داری بشه بر حکم الله این رو اسمش رو حدیه بذاشن فرق رو این حدیه برشه رو فرق شکل اینجور پول به ازای حکم الله به ازای هیچی برخش حکم مکنه این پول بر اینکه که طرف رو جذب خودش میکنه که در نتیجه بلکه او حقوق میکنه این اسم حدیه خود مرحوم شیخ ای؟ در اینجا تفصیل وارد کردن در باب حدیه هستند باطل و با برد باطل نیست هست باطل هست حدیه اما ضمانت نداره در باب رشوه فاسد است با برد از صد مرحوم مصالح هم سه صورت کردن شیخ گفت دو صورت کرد یکی این که پولی رو به عنوان رشوه بده اینم فهمیدن باطل از صحبت برد مالک نمیشه باطل دو با عنوان معامله محاباتی باشه اصلا به اینجور به غاقی بگه شما به نفت من حکم بکن یک خونه ده ملیونی ریشان رویشان میده به یک ملیون من معامله محاباتی اینجا مرموم استاد کنید خیلید شرط فاسده و ما شرط فاسده مبصد نمید معامله دوست صورت سوم هم حضییت که من روشه ایشان مثل شیف فرمودن در این صورت ثبوت هم زمانت نمیاره. زامن نیست این مجموعه اقوال خصیح قولی که مطلقا زامن نیست دو قولم به تفسیر اونی که به ذهن این حقیل تا با تفسیر درسته مطلقا زامنه ولو حدیه باشه ولو اون مواردی که مرموم اصلا معامله معاختی گرسه هم مطلقا زامنه و اون معامله هم باطله دو مرتبه باید به اصطلاح اگه مخبت دو مرتبه از کسایی که قبلت شیف محطرح کردن مسئله من فقط به عنوان از تمتونه اقوال کاملی میخویم برگرد بکار مرحوم محقق نراجی استاد مرحوم شیف که ملا احمد نراجی از کردن مرحوم شیف در اوائل گول محطرت بیشون یک سه سال در کاشان میونه که در خدمت مرحومش احمدی ناروی دوران فقه پیش ایشون و اصول پیشون میذان ظاهرا و یک قصیره نقل کردیم مسنداً چون در شرحات شیخ نماده از استاد و مرهمات گوشوتی شنیدیم چون از مرحوم آقای هاشم دلار رنجانی از شاگردان میزد شیرازی از میزد شیرازی از شیخ سازش تاریخ سازمان برسون بده حرکت این که شیخ فنده انسادی که من در کاشان میذان فلسفه هم خونده این معنی در شرحات شیخ نماده نرحوم نیزه از قول شیخ نرحوم میکرد که این قصه چون سال رو بگن میفردن که من به نرحوم نرحوم بخشم که یک تا داره فلسفه برم بگی شون این گرفتاروی یعنی هم دیده بعد من رو کرد یک شخصی که بود در فرام خونه ایشون برای شما ایداره فلسفه برم من, خب من رو خب شایشم بخال اموزیامون که شرقه بود این سوفیه که من رفتیم حاضر است نیتی کن که آن مدت درون یه سطحی دربیشه، آمار که من مدتی من گفتم که چند تخلران، اما نمیشه به هم نیم من می‌تونم رو که آیا ملله‌م احمد می‌تونه سرکوب مسیح آشناشی داشته؟ نه حالا شکل آب جاری می‌خوایم اول بره. کم مثل دیداریم فرق مسیح ملله‌م گوشت مشکل و دوره در زمین نمون یه گوره فرسفر هم میگم و از این قصه ما بیری تفیقی سهلی گفتیم ایشون خیلی سه سالی که من در کاشان بودم یه گوره فرسفر پیش همون درویش از راه مصنگی ملای روم خودم علایه حاله مرحوم ملای احمد نراقی که استاد شیخ البته انصاف قضیه مصنگ ملای احمد نراقی که معروفی که استاد ندیگه بیشتر ابدعات خودشه ملاحمن خیلی ترک کرده فقر رو واقعا یک حالایشی جدید بکنه خیلی زحمت کشه از اینجا خیلی آزادی فکر داره مثلا هم اصداد ماه خوی که بسیار مطالب رو زیر بنا لیکن خب معروفه که ایشان کمتر استاد دیده شیخ اجمالا آرای ایشان رو کم میداره خیلی از جام که میاره برمازکر و بازون خیلی با اون تجریده کامل نمیدونی میسته بشن چیه نفهمید. در حال در مستند در بحث قضا داره هر اون یجب علی علمشتری مرتشی ردها علی راشی ردها و رده اون قاضی باید رد بکنه و این بذله ها به رضا نفسه این بخواد مثال مجانی رو برداره یه در خودش گفته من مجانی دادن پسیل کردم و من قبول داشتم این کافی نیست و این بزده ها به رضا نفسه من عین ها اجماعم اگر اینش باقیه که قطعاً باید اون رد بکنه و اجماعیست حد کنم که انشاءالله تعالی در خلال بحثای آینده خواهد آمد یه تصوری گاهی در فقه شده مثل این که مرموم شهران میخوایم بعد از معاصل نمترده خیال فرن اون عدلهی که میگه من مسلط برمالم غذای من کافیه اقدام من کافیه این کافیست برای اینکه حتی اگر شاره اون معامله را اجازه ندازه ما درست دونیم اینشالله خواهد با بعد از بزرگانه ما مثلا مرموم شهرگاریم فتیفیر ایشون بحثی داره که اگر معامله مجبور کرد اصلا ایشون مرشود رو دروح. این اشبال ما دازه روست اطلاق لاعتقون تجارت انتراز راضی باشون؟ درست دیگه؟ خب راضی هستم تجارت انتراز اطلاقش میگید این رو اینشالله خواهد آمد اگر ما حدیث نهن نبیان به ایل رو بیاریم اون در حقیقت توضیح این اطلاقه یا طبیق این اطلاقه یعنی این کافی نیست که ما بگیم چون من راضی هستم تجارت انتراز این تجارت انترازون اجازه به هر تجارت انجام بدن ولو مجبور باشه نه شاره ای که میگه به اقراری جایز نیست به اقراری باطله یعنی ولو ترازی شما هم باشه ترازی شما اثر نداره به قدرتان مخیر ولو ترازی شما این که میگه به رضا نفسه اشاره در محق نراضی شاید دیم باشه اینجا دوبال رضای نفس ندیم ولو راضی باشی من خودم تحمدن و آگاهانه این مال رو مجانه بیناها دازم خب دادی چاره گفتر شهر رو خب داده باشید یکتونه گفتر شهر این رضا در اینجور کارها در اینجور مباره مثلا تمسک رو کنیم به تجارتن انتراز نمیشه تمسک کرد وقتی پیغمبر فرمون که به اقراری باطل با گفتران به اقراری جای تمسک به تجارتن انطراز نیم بخان بخان بخان رشت چرا رشو که رشو هست یه جبا علمونتشی رد دوارد درشوی که واضح این مونتشی این نقطه که به این بدنها به رضا نفسه میگه من رضا دارم خودم راضی هستم او راضی باش این رضای تو کاری میکنه وقتی شاره میاد میگه این رشو باطله اون رضایی او چه کاره هست کاری اینجا انجام بده دقیقه ترموزی من دقا اینها اجماعم این توضیحاتی است تو اصول مرحوم شیخ شیخ انصاری در بحث اجماع، به ذهن من این طور میاد که مرحوم شیخ بحث اجما اول نوشت بعد این کتاب کشوردان مرحوم توستری مرحوم آشه عصدالله توستری رو دیده بعد بعد از اینکه که مثلا بحث اجمایی که شیخ انساری دسته تفرسیلی کنه بعد خلاصه ای از اون کتاب رو آورده دانون بعد از محققین اعلی معاصی مردم هاتی. یکی از دهت اجماع شیخ قیانی شده. یا مرهم توسنری مرهم آش هست ولی شده ما که بحث اجماع نشان می‌دم. لطفا اتو خوبی داره. زرایی بسیار خوب داره که خوش آدایی اون کتاب. ای کتاب نسبتا قطعیه. خوش کتاب رو شیخ در دروازه اجماع خودش یک جنگل کرده. این جور اجماعاتی مقداری مشکل داره. با خودم تنبّن بیین مشکلات رو در این ما آسیین ما با شرط مفصلنتر معرو آیا جاصولیت توسعی توی تشغنا آماده کتاب بیاان تشکن هاج حجیت تلما کتاب بسیار خوبیه بسیار نافعیه و که ادبیات خاصی دا مقدار کتاب رو مغلق کرده اگر میشد این کتاب با سازی میشه با یک ادریات روشنتری بسیار کتاب نافعیه خیلی مرد پرکار و پرتتی مردم آش الله لا رو سری تشولکن ها حالا آیا حالا این مسئله اجماعا این اگر اجماعی باشه پس ممکنه بعد از علامه هندی باشه اصلا این اینجور مسائل که آیا برمرتشی ردش واجب هست یعنی معبقا ال اصلا در کلامات قدما کلن نیامایی این اصلا کلن نیامایی از این سن اجماعات همسا اصلا کتاب کشوردن ها تحقیقاتو خوبی داره خو این حقیقه صاحب تقریر چون اجماع بر این, این توضیحات بیش از این که ایشون فرمودن توضیحاته اینجا ادعا کردید که این ادعای اجماع در وایری ما در زمان‌های مختلف در شیعه به برده شده یکی این دعاویه اجماع از جواهر و مستدرک این کتب آمده اینا خیلی مشکلات فنی داره خیلی چه می‌گم مثلا این فر اصلا سال‌ها قرن‌ها مطرح نبوده که اجماع بوده باشه بگو معلومه 60 دلار چستری مراد این است که مثلا ده نفر که مثلاغن دهم متحرش شدن اونا گفتن همه اونایی که متحرش شدن گفتن نه کی در فقه شیعه مطرح بدهایی تخطوب نشه مثلا چینچیدی چیزی فقه شیعه مطرح نبوده این اجیت نگولید و این عبارتو بودم برای توضیح کلمات اجمال در کلمات این علما کی این تقدیر بنشماات حالا این 60 دلار امروز بخوام بگم یه خیلی خارج میشه حوضیات کلیش و اصول و بعد از موارد مصداقیشن تو فقر تابه گذاشتیم باید زم خواهی دیم و الوجب و فیهه ظاهرون چون شرحن حرامه و یجبا علیه رد و عوضه ها معطلقه ها ای زن. و این لم یکنه تلقه به تفری این حکم وزیعیه این فاسدشون فاسد باید رد بکنه وجوبن مف... فورین از المسرح بهتی کلام الاسحاب اما چی وجود فوری با ترافی این انصافا نرم باز اصلا اصلا در قرنها در کلمات اصلا کلا وجود نداره این مراد کسانی که بل نفی خلاف بین نه انه نفی خلاف و اجماعشان به این معناست بعد و ان ظاهر ما ان شاء الله تعالی توضیح خواهم این اجماعاتی در مثل کتاب جواهر و هم کتاب مستند اینها ماله مثلا آیه حکیم خیلی جای اجماع داره ایشون باز جواهر ما بحث تسته سال تاریخی شد این شادات مالا تو وصول به طور کلی متعرض شدیم هم تو بحثه پشتی که اثر دارم چون که خیلی اثر نداره نمیخوام ریش رابیش کنیم و انظاهر مساله که غیرهی از کردیم این دعاوی اجماع به این معنا نه به اون معنایی که مکتر بغداد قائل بود به این معنا تقریبا از زمان علامه راید شده باید زمان علامه یک معانی خاصی داره بیشتر این زمان به کلمات مثل مسالله با مفقه لی و م کرکیک این ها یاشااش مطرف شد. و هوای زن فی هزاربرله ها من غیر رزل بازل و تیب نقصیحی زار رو. اگر تیب تییب نبود مجبور که من مجبور کلوللا رو به ند رکن. این ظزاره و اما لغ بزله ها از کلون محاففی نراوی، این صاحب کرده یک مسئلهی که اگر سرپن در صاحب یک فرق داشته این رو شافه شافه بکنه فرض این کرده که لوب بزرها این رشده داد به سی و نفسه این یک فرض دو اگر فرض کرده نیشون به سی و رشده داد و بعدم تبعیه یعنی که با من حقاً با او بوده قاضی هم که من او حقیه که حق با او بوده این سی ما لهو فه این صدتر اجماع علی صبوت قرامتها علی اگر اجماع بیاد و زمان ای ایاها مطلقه و در این صورت و الافر تعمل فی لده هست اصاف از زمان مجال واسه واسعون پس معلوم میشه که محقق نراضی قدر از از از از ایشون هم یک مقداری در اطلاق زمان و زامن بودنش گیر داره در جایی که ایشان روی تیب نفسش این مبلغ رو به حساب پرداخت کرده رو تیب نفس داده و ایشون میگه اجماع روشنی در این جهت با نداریم ولذا قبول این مطلب برده مشکل. یک که شبیه این هم در یک استاد دیگر مرومه شیخ آمده نه قدیوش در جواهر جلد بیست دو سفیس سفیس قدیوش کلو رجوع به ها معطلطه ها و علم داته دلخورمه یعنی در وقت زمانهش اشون هم گیر کرده وقتی میگه یوش کلو رجوع معطلطه ها این زمانه یه روز ما توضیح داریم اگر رجوع با وجود این باشه اسمش غده اداره اگر با طلب هم باید برگردن اسمش زمانه وفی نه قدیوش که الان هست کردم یوشکل رو به معلوم بکنید اشکله اصولاً مجمع. متعددی نیست لازمه قدیوش یوشکل رو ار رجوع به ها ها یعنی زمان نداره و علم دافع به مورد از دافع راشیه اگر راشی میدونه حرامه ما ازالک با علم میدونه این که حرامه راضی داده معلوم نیز زمان بیاره به اعتبار تسلیطی مشکلی هم همون قاعده تسلیط مجانی چون تسلیط کرده لذا مشکل در این صورت که رضا باشه پس صاحب جواهر هم در زمانتش اشکال داره از مرهوم مستقض هم در زمانتش اشکال نهروش استاد مرهوم میشه یه عبارت هم مرهوم میشه از بعضی از معاصرینش نرو کرده عبارت مقاسب گفت یه بار دیگم بخونیم و فی کلام بعض, بعض المعاصرین اه ان احتمال هدم زمان فرش مطلقن مطلقن در جمیع موچه هدیه باشه چه رشب باشه چه محاباتی باشه هم من دیگه باشه غیروبعیده معللا به تفصیل مال که علیه ها مجانه هم همون قاعده تفصیح. این خودش هم توی شبیه عبارت جواهه خودش این مال رو در اختیار قاضی قرار داده مجانی قرار داده چون مجانه قرار داده این زمانت نمیاره و قال شیخ میبرم شیخ توش به تشبه المعاوزه و ما یوزمن به صحیحه لایوزمن به فاسده از, از ما فعلا ایشون نمیدریم که احتمال میدیم چون بعضی از کتب که تا حالا ازش اسمش رو چاب چاپ نشده بعد بعضی از متالی چه در محرمه از اونها گرفته شده که یکیش حاشیه مذهب شیخ جعفر کبیر بر فواید به نظر میاد ایشان انوار الصفای موسا موسی پسر ایشونه شیخ موسی میشه احتمال داره در بعض از این کتب دیدیشان اسمی برده به حال بعد ایشون میگه قال و لهنها تش به المعاوضه و مالای و مند سفیه لایزن میپاسده بعد مرحوم شیخ میفرمايت خود دقت کنید ولا یحفا ما بین تعلیلی من تها طب تنافی میگه خیلی عجیب کلام ایشون از یه طرف گفته تخفیف مجانی است از یه طرف گفته تش به المعاوضه خیلی عجیبه میگه مجانی معاوضه چی معاوضه مهم که بدل عوض در بخواب رو سبسید با همگیلی میسود ولا یخوا معاوضه تعلیلی مهد تنافیل نشه به معاوضه یخبر زمان لعن المعاوضه اصطر یک سوچه با زمانه مضافن که نکته عجیبش اینه گفته لعناتش لا لأ به معاوضه و مالا یزمن باید بوم و ما من به سهیه چون معاوضه که زمان میاره بعدا شیخ میگن لعن المعاوضت صحیح تمافیه دوم توجه با زمان کل من همه ما وسل علیه به اغربی دیگه شون زمان میاره کتاب مثلا اگه من فروختم کتاب رو به صحیح باشه زمان میاره یعنی شیخ زمان میاره کتاب رو فروختن به ستومن زمان یعنی چی؟ یعنی اگر کتاب رو به شما دادن کتاب هم که شما مطلب شد شما باست ستومن من بدید در مقابل کتاب ستومن من داده اما اگر به فاسد بود کتاب تلف شد شما باید قیمت همیری کتاب رو هم بزید نه سرکتون هم این که شما برده معاوضت و معلایوزانده صحیح این دوتا هم با هم نمیسازه هم تصریص مجانی هم معاوضه هم معلایوزانده این کلام ها با هم خیلی ربطی نداره خیقون و محل فساد به عوض واقعی و اول مصر اول قیمه از کلیم واقعی در اصطلاح اینا در مقابل عوض جعلیه عوض جعلیه نیست در قرارداد میشه کتاب روختم به در سطح ما. این عوض جعلیه قیمت کتاب در بازار فجار اون عوض واقعی قیمت کتاب در موضوع دیگیست اون عوض واقعی ایشون عوض واقعی ها در موضوع شد ولی سفر معابضات در عوض به صحیحه حتی لایوزمن به فاسد بعد نم ایشون یه بله بعضی از جه ها معامله صحیح زمان نیست اما اون عوض نیست شبه این عباد ساده از و خیلی من نیمون خواهد آن مراجعه کنم آخر کار شکیم دونید و تحقیق انکونه ها ما آغازتا او شدیهتا به ها و زمان به عوضتی زمان پس آیا احتمال داره که این آقا مرحوم این آقای معاصر شباه کرده ما یوزمنده سریعه یوزمنده فاسده اگر مرادش این باشه چطور گفته تصویز مجانی و زمان تو نیست این مخلبیست که در تلمات شیخ آمده به اشکالی که این معاصر کرده پس دو تا برس یکی این که در ما نحنفی اگر گفتیم معاوضه از باز زمان باشه یه با تصویز مجانی هم باز سازه با ذکر اون قاعده هم نمیسه. فکر که یکی از کارهایی در روزهای ما که من میگم روزهای ما مرادش اینه سنیون داره کتاب کلمات قدیم سنی رو داره یا در این حوالی که مثلا ابو الحسن اشعری میگه فلان میگه مرادش اینه فلان میگه نه مرادش اینه فلان براشا رو طولانی که مراد اون آقا چیه من اصولاً خود من طبیعتاً تو این بحث ها وارد نمیشه اصلا کلا این آقا چی فرمود حالا لا افساله زیادی گفته چند گفته چی گفته این ها من شکلی بازی این بحثات ندیشن چون واقعا درست علیم نیست و دنبال محلل هستیم این وقت این آقای با دیگه مرحوم نیروانی گفته مرادش از معاوضه معامله هست عقبه بازی راهای اشکالی هده که این با عبارت نمیستازه و حالا مجرم این سات قضیه ما راهی که ما خودمون میریم این است که اول با این کلام اون آقا ببین. <تصفيق> رو ببینیم سرسرش رو اصل اون کلام دیده بشون اون رفت بشین بگیم که این کلام منتجب یا کلام منتجب چون الان اون معاصر رو نمیشناسیم اون کلام رو هم ندیدی انصافاً بخواییم بحث بکنیم که این معاوضه میم معامله یا معاوضه یا که حالا حلایه حاله از کزم خیلی ما توی این بحث ها وارد نمیشه اما اگر عبارت همین باشه که شیخ خوب چون الان ما عبارت در در اگر عبارت نمی باشه این صافت خب ابحام داره این صافت اشکال داره عبارت روشد می گذونی شد اصلا تصییر مجمی باشه با معاوضه نمی سازه مالایزان به طریب مالایزان به فاسده نمی سازه خیلی سلام مختل داره. این صافت ما خیلی هره توجیه نمی بحث قبل مراجع به اسات زهور بود بیرونم که اصلا اصلا ما چون باره به اسات زهور هستیم باید کلام زهور کنه. داره عبارت، انسجام خیلی نداره انسجام معنوی نداره در حق احتمال اصلا من خوشم نمیده از این بحث های احتمال احتمال دیدم چون برحال این نصفه رو ندیدی نشناخی این کلیه معاوضه احتمال دیدم معاوضه باشه نه معاوضه این با تسکیس مجانی و با مالای زنده سریع میباره. و تصدیق به وجاهی تصدیق مالک علی امجان که هداست این هداست و لانه ها خوش به ولی هبتا شبیه به معزز شباهتش به چی ام به خاطر اینکه من خود این قاضی حدیه میام که من حکم میکنه میشه که من به شما هدیه میدم به عباس من هدیه بود هدیه معطی نمیدین دیگه بود من یک خرچی به رأی میدم که ایشون خاصن مثلا به من یک تابلو هدیه بده یک عبا حضیه بده این بهشین حبه اگر این کلمه او غلط باشه ثوابشی معلوزه باشه دسته پیش هم ما چون نیباید نکانده این دیشب یک لفظه که من اونجایی که نشستم مرتب در احتمال به ذهن خدوط نسخه غلط بوده شهر نسخه رو برکونده چون میگن کتاب الان موجود نیست اگر این جور باشه، اگر فرض در این باشه چرا شبیه معوضه هست، هبه معوضه؟ چون من پول میدم که به نحر من حکم بکنه هبه معوضه پول میدم که به پول بده این چیز میدشن به جاشی جنسی دیگه بده این شبیه هبه معوضه هست بگرد رجع شبه روشنی شد من به این فکر میکنم معوضه باشه فکرم هم شهر قدس الله نفسی نصفه خطی بر بوده چون الان بیگم جایی ما اعباده پیدا ما اگر انگر فرض رو برگین بگذاریم که این کلمه معوضه باشه نه معاوضه چون اول گفت تصریف و مالک علیه ها مجانم این تصریف مجانی هبه بعدم فرموز و لنه ها تشت حول معاوضه نیه هبه معلوزه. چرا شدی؟ چون من پول میدم که این به نظر من حفت بکنه در عوض پورت پس به نفع من میشه شه معرضه اگر این شود مالای روزمنده درسته چرا؟ چون در کلیه صحیح زمان نید پس در حبه زمان نید اگر دقیقه فهمیدی. اگر فرز شدید این عبارت این شود، کس اون یه چیزا سخت نهداره زیادی هم نداره اون عبارت ما مالایزمند صحیح، الایزمند فاصله درست میشه. چرا؟ چون در هدیه به هدیه صحیح زمان نیست، در به فاصله زمان نیست. لكن شدیه هدیه موعذ است. چرا که این این شماها نه هدیه که هداه نه. خب می‌دونن یعنی مخالفه که شدیه موعذ است، هدیه مطلق نیست. ایجاد چیزی خب ما موعظه نکش اینه که لازمه عقد لازمیه ایشون میگه چون این حبه ما موعظه زمان نمی اصلا هدیه کلا زمان نمیاره بعدا فرض کنید که این اثر ندارم ببینید معنا که این شطر اولش هستی اون عبارته نگیید اصلا طبیعتاً نمیستی این بحثه خیالی میگید موضوع بحثه خیالی نیستید ولی عبارت اول ببینیم نص اول درست تشقیق بدید معنی درست تشقیق کنید بعد میاد وارد لکه من احتمال میدم در حد یک احتمال برای اینکه که این امسجام کلام این آقا به هم نخوره ایشون گفته معللا به تسلیف المال که علیه ها مجانن یعنی هبه لیکن هدیه یه م... معوضه به عوضه خب اون بسید هبه کلن زمان نمیاره فقط در جام زمان نمیاره البته ممکن است کسی در هبه معوضه باقیه به زمان میشه من منشه بیدارم به هر حال ظاهرن این شخص قاعده ما لایوزان به سهی لایوزان به فاسده رو این جزه کرده که بگه این هبه نمی این راجع به یک مقدار اقوال در مسئله و صحبتهایی که در مسئله شده تا زمان شیخ و بعض از اقوالی که برداشه از کلیم مرحوم شیخ خودی ایشان تمثب کردن به در باب هدیه، که حدیه. این یک هدیه فاسد میشه و زمان نمیاد. بعد ایشون به خودشون اشغال کردن و کونها من نه صحب چون که رشده از صحبه پس باید بگیم اینجا زمان میاره و هدیه باشه ایشون یه ان نماید لا علا حرمت لعظ لا علا زمان گرفتنش حرامه اما زمان توش در نمیان و عموم و مختصون به غیر ید المتفره حتی علا مجانی البته این تسلیف مجانی که ایشون فرمودن تسلیف این مرادشونه ولا از کردیم بحث علالیت که مطرح بود حتی در تسلیف مجاری در انتفاهم مطرح بود این توضیحاتش دیگه گذشت. شما در آریه تسلیف مجانی میکنید آریه آریه معناه میگه آت یک ماه من آریه بده شما یک ماه کتاب در خیارو قرار برید تسلیط مجانی بدون پول لیکن تسلیط در این نیست تسلیط بر انتفاع شما گفتیم گاهی تسلیط در اینه که اسمش هدیه است گاهی تسلیط بر منافع مثل وقت و اینها امراه و روحبا و اینها گاهی هم تسلیط مجانی بر انتفاع اسمش آریه است. آریه تسکیف در انتفاه این که ایشون فرمودن قاعده علیت تسکیف مجانی رو نمیگیره. از کردیم اصلا یکی از مسادیر مهم معردیت و آریه بوده که تسکیف مجانی ای <تصفح> از مسادیر مهم میشیم بود ارز وقتی اونجا تسکیف مجانی بر انتفار، مگر نظر شیخ قدسال الله نفسه بر این باشه و بر انتفاه که قدر مهم کلامه و تو روایات ما آمده که نیست. به عده از, از احلیستان در گفتن زامن هست به خاطر عربی اینم این هم اگر مراد ایشان مطلع فسیس باشه که اشکال داره اگر مراد ایشان این باشه بله ظاهرن حق باشه ایشه ظاهرن یعنی اصحاب ما معتقدند که در حده فاسد زمان نیست لیکن همینطور که من نقل کردم از بعد در ها میگن در حده صحیح زمان نیست اما در حده فاسد زمان هست. این رو جزر موارد استثناء گرفتن که لا یزمند صحیحه لیکن یزمند فاسد اگر هده صحیح بود زمان نیست چون کتاب به طرف حدید نیست هر شد شد زامن بود به حدید اما اگر کت هدیه فاسد بود هده فاسد بود و کتاب طرف شد باید برگردن از کلم زباهری که در عبارت از خواب دیدم ظاهرا من شنیدم که مفهوم استاد و دیگران مخروق هل هل زمان نیست مخروق و نه نه الان از کلیات از نگنم می کنم اینه که من دیدم اما در کلمات شافعی ها دیدم که احتمال داره در هله خاص زمان باشه و عرض کردم این ای که من الان به ذهن نگاه ان حسابش نکردم استدلالی که نگاه نکردم نکته ای که الان من به ذهنم میاد عللیت باشه چون ما میدونیم که شافی ای کسا از است که به علمیت تمثل کرده شافی در آریم قائل به زمان لذا احتمال میدم و لذا اگر این مطلب درست باشه، ای یکی از اشکالات بر علماء ماست که به قائله علمیت و عموم و اطلاقش تمثل اما ترجیح نگردن که این قائله اختیزای زمان رو حبه فاسله به خلاف اون راه کشه شیخ یه به عموم عللیت مختصو نه اگر عموم رو قبول کردیم تخصیص در برایش برشا نمیاد انصافا اون اشکالی که بعدش جواب کردن اگر مرادشون این باشه اون اشکال وارده خب این راج به پس تخص مرحوم شیخ دو تا مسئله در باب هدیه دارن یکی عموم عللیت نمیگیره که ایشون هدیه خاصه نمیگیره در مورد بقاضی مالایزمند یکی اگر صحت باشه یعنی لا علا حرمت اصل لا علا حرمت زمان بر حرمت زمان دلالت نمی این مطلبیشان اینشان روشن انصافا این مطلبیشان که در روایات آمده رشد صحته یا موارد دیگر صحت زاهرن شامل زمان هم میشه. ما در بحث خودش متعرض شدیم شواهد نشون می که صحت یعنی حلاق نابودی اصلا صبح ما آنی محسوسش نگاه می کنیم مثلا مرضی در مهده بوده زخم یا یا مرزی که موجب نابودی و حلاکت اینسان میشه. این کنایه از اینه که چنین چیزی در پیش شاهه منفیست همونه به هیچ نهبو رو قبول نیازه چه مثلا سمن خم وقتی میگه سر سلطه یعنی انسان سرمان به هیچ نه در منی که شما بارد نشده به هیچ نه یعنی این پول دیگری شما بدون هیچ بونه نقطهی بدون هیچ نقطهیه چون از کلم ببینید فرق بکنید. ما اگر خواهیم مال کسی رو در تصرف درش کنیم به طور کلی یکی از دو ازم باز باشه یا ازم مالکی یا ازم شرقی اگر از ازم راهی نداریم یا مالک اجازه بده یا شارع اجازه بده یا اذن مالکی یا اجازه مالکی یا اجازه شردی این به طور, کلی. مثلا به طور کلی وقتی شارع میاد الغا میکنه خهم رو سمن خهم رو شارع اجازه نمیده و او رو حلاسی میگونه یعنی اجازه مالکی رو هم دیگه قبول نمیکنه الان اشاره کردن قانون هاشم احمد نراحی خصوص به امکان برزای مرسه این نکته اینه جایی که جا قانون میاد تصرف میکنه دیگه رضا و اذن مالکی کارگزار تاثیرگذار گذار این همین طور دوستان که بگیم اگر اذن شاری نباشه ولی از نه اگر جای شارع اذن نداده اما اجازه داده اجازه کلی نه تصرف خاصی نکرده مالک اجازه بده پس بنابراین ازن مالکی و اجازه مالکی شرط اساسیش این است که از طرف شاره من نشده باشه مثل همین استضاد تجارت انتراز ما به, از... به تجارت انتراز نیستیم بگیم اطلاق داره هر جهن شما خمره بکنیم تجارت انتراز وقتی شاره بکنیم وقتی شاره بکنیم سمن الخمر صبح توه یعنی دیگه تجارت انتراز تأثیر نداره؟ وقتی فرمون نه نبی هم به اقرار تجارت انتراز تأثیر نداره؟ نه اونجا مخاطب بگیم که درست باشه به تجارت انتراز درست بشه بیدیم تجارتن انتراز سمن خم رو درست میکنه. کنه سمن میتر رو درست میکنه. نگه این که جاناتا انتراز رضای مالک هست درست رضای مالک هست و نظام و اصولا شهر داریم نسبت سنت به کتاب همینه یعنی وقتی شاره میگه نهن نبیانده القرق این جزه سنن رسول الله که شاره کتابه یعنی اون که جاناتا انتراز توسعه نداره ولو مجبوی باشه اگر مثلا دو خط دیگه فرامتیشه است ولی وارد نمی‌شه مثلا نماز جمعه مثلا نماز جمعه دو ما خشی بگه خب ببینید اولا مسأله نماز جمعه رو چون ما، اولا اونجا تعبیر نه حجره نه حرمه ضرر به داره ثانیا اونجا ما با اکتساغات عرفی خودمون فهمیدی مراد بیت نیست مراد اشتغال این دو تا. یعنی شما مشغول خرید و فروش شدن چه نماز نیایید مراد اینه اما اگر شما دکانتون رو بسید با رفتید راستیم به طرف نماز جمعه وقتی ارزانشی می رفتید به طرف نماز جمعه تورا او زمان ماشین هم بسید این اصلا این منطرف از اینه و لذا فهمیدن که این نه این عرفی اینه فهمیدن اما اگر بگه نکنید لاتن که هون مانکه ها آبا آکن ببینید ارخیت نبنید بر که پدران شما برای عرض بستن حالا اگر عرض دسته که حرام متکف زمان عرض روسته ما حرف ما اینه که لا تنکهو اینو توضیح رویتون هسته یه تحضیح اصولیش هم ارائه در محلو برش توضیح کافی داری این لا او ماده رو هم برمیداره به نظر ما لا که معناشی اعدامه هم مخاطب رو دستش میگیره یعنی مخاطب این عرض رو جاری نکنه و هم این نکاح رو برمیداره اگر نکاح رو برد لا معناش نفیه لیکن انت کردیم لا چون معنی حرفی معنی حرفی مندت در غیره این نفره اندکاتیست اندکات که در غیره وقتی بگه لا و هم که همه جلو جهن شما رو مندکی سیقی نکاه رو جلوی هم مازران برمیداره نه یعنی این توش در لا به دو خورده هم به مخاطب خورده وقتی دست شما رو بر اسمش میذاریم نمی تحریمی اسمیش حکم مولایی. وقتی مازه رو برداشت اسمش میشه حکم وضعی. این صحبته برنامه که لا تنتبه بود این هم که آقاون گفتن ببین که آیا نه تلاش بر فساد میکنه یا نه گفتیم این روشن نیست ملازمه با فساد داره تحریم در معامله روشن نیست. اصلا بحث ملازمه معننا این داریم خود الله هر دو کار رو میکنه نه اینکه اول اثبات تحریم بکنه تحریم ملازمه با فساد داره. این رایی از که آقایی رفتن، آقایی خوبی دیگر آن. لذا بحث نهیر در عبادات رو چند بار گفتیم مباحث از از که مباحث ملازمات رو دوردن ما از سهیر قبول نداریم که مباحث ملازمات رو خود نهی هر دو کار رو می‌کنه. هم مولوی، هم به هم تکلیبی، هم حفظ و وزیر. چه آقا؟ <تصفيق> دقیقا بفرموید ما از کنی اعتبار تعبیل مثلا در روایت داره لا صلاف الا الالقبل لا تو صلاف الا الالقبل یکی میسیقه نفیه یکی میسیقه نفیه ما یاد توضیح کافی ارز کردیم که این دوتا با همدیگه تلازم و عرفی قانونی دارن یعنی اگر گفت لا تو صلاف الا در به سیقه نفیه هم تحریم رو اثبات میکنه، هم میگه این نماز باطل لا تصحله صلات نیست اگر گفت لا صلات الا لله الى ابتدا میگه صلات می چون صلات نیست پس تحریم پس لا صلات الا لله الى ابتدا هم میگه نماز می باکن لازمهش نه مدبود و عرفیش حرمت هم باشینه وقتی نماز نبود حرمت نمی اما اگه بلات و سنده ابتدایم میگه حرامه باید مدلول قامیشی این خلاطم منطقیه لذا چه به نهی باشه چه به نهی باشه دو تا حفتیم دارن یکیش ازولی یکیش سانبیه ولذا هرزو تعبیر ما تو رو باید داریم لات و سنده الا الالخبله هم داریم لا خلاطه الا الالخبله هم داریم لا احرام الا من المواقعی سلیتی وقتها رسول الله داریم، لا توحیر الا من، ال... لا یم دلیل که انتفقر من المواقعی سلیتی وقت رسول الله، اونم داریم. ما معتقدیم که این دو تا حکم مولدی و تکی و وردیش هر دو با هم، فقط یکیش مذهب کلام، افسرلان، حکم وضعیه مثل لا تلاح. یکی ابتداراً حکم مولدیه تکلیبیه اما در نتیجه هر دو زن پس لا ترکب و مانکه ها آبا ها دو تا بود این دنسیداش دیگه که این تختار شد به خاطر درخواد بیشتونه ما این بحث ها کنان ارز کردیم و